فهم کردن حازقان نسارا، مکر وزیر را هر که صاحب زوغ بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفت او نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته ظاهرش میگفت گفت در ره چوست شو و از اثر میگفت جان را سوست شو ظاهر نقره گرسپی دست و نو دست و جامعه می سیه گردد از او آتشر چه سرخ روی است از شرر توز فعل او سیه کاری نگر برق اگر نوری نماید در نظر لیک هست از خاصیت دزد بسر، هر که جز آگاه و صاحب زوغ بود، گفت او در گردن او توق بود. مدت شش سال در هجران شاه شد وزیر با عیسی را پناه، دین و دل را کل به دو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او میمرد خر.